مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و سی پرسیدن پادشاه قاصدان عیاز را که چندین غم و شادی با چارق و پوستین که جماد است میگویی تا عیاز را در سخن آورد. ای عیاز، این مهرها بر چارقه چیست آخر همچو بربط عاشق، همچو مجنون از رخ لیلی خیش کرده ای تو چارقه را دین و کیش؟ بادو کهنه مهر جان آمیخته هر دو را در حجره آویخته، چند گویی بادو کهنه نوسخن در جماد دمی سر کهن چون عرب با رب و اطلال ای ایاز می کشی از عشق گفت خود دراز چارقد ربع کدامین آسف است پوستین گویی که کرته یوسف است همچو ترسا که شمارد با کشش جرم یک ساله زنا و غل و قش تا بیا مرزد کشش زو آن گناه عفو او را عفو داند از اله نیست آگه آن کشش از جرم و داد، لیک بس جادوست عشق و اعتقاد. دوستی و وهم صد یوسف تند، از هر از هاروت و ماروت است خود. صورت پیدا کند بر یاد او، جذب صورت آردد در گفتگو. راز گویی پیش صورت صد هزار آنچنان که یار گوید پیش یار نه بدن جا صورتی نه حیکلی زاده از وی صد الست و صد بله آنچنان که مادر دل پیش گور بچه نو رازها گوید به جد و اجتهاد می نماید زنده او را آن جماد. هی و قایم داند او آن خاک را چشم و گوش داند او خاشاک را. پیش او هر ذره آن خاک گور گوش دارد، هوش دارد وقت شور. مستمع داند به جد آن خاک را خوش نگر این عشق ساهرناک را آنچنان بر خاک گور تازه او دم بدم خوش می نهد با اشک رو که به وقت زندگی هرگز چنان روی ننهاده است بر پور چجان از ازا چون چند روزی بگذرد، آتش آن عشق او ساکن شود. عشق بر مرده نباشد پایدار، عشق را بر حی جانفزای دار. بعد از آن زانگور خود خواب آیدش، از جمادی هم جمادی زایدش، زان که عشق افسون خود بر بود و رفت ماند خاکستر چو آتش رفت تفت آنچه چه بیند آن جوان در آینه پیر اندر خشت می بیند همه پیر عشق توست نه ریش سفید دستگیر صد هزاران ناامید عشق صورت ها بسازد در فراق، نامصور سر کند وقت طلاق. که منم آن اصل اصل هوش و مست بر سور آن حاسن عکس ما بود است. پرده ها را این زمان برداشتم، حاسن را واسطه بفراشتم، زان که بس با عکس من در بافتی، قوت تجرید ذاتم یافتی، چون از این سو جذبه من شد روان، او کشش را می نبیند در میان، مغفرت می خواهد از جرم و خطا، از پس آن پرده از لطف خدا، چون ز سنگ چشمه جاری شود سنگ اندر چشمه متواری شود کس نخواند بعد از آن او را هجر زان که جاری شد از آن سنگ آن گوهر کاسه دان این سور را و اندرو آن چه حق ریزد بدان گیرد اولو. گفتن خیشابندان مجنون را که حسن لیلی به اندازه است چندان نیست از او در شهر ما بسیار است یکی و دو و ده بر تو ارزه کنیم اختیار کن ما را و خود را وارهان و جواب گفتن مجنون ایشان را ابلهان گفتند مجنون را ز جهل حسن لیلی نیست چندان هست سحل بهتر از وی صد هزاران دلربا هست همچون ماه در شهر ما گفت صورت کوزه است و حسن می می خدایم می دهد از نقش وی مر شما را سرکه داد از کوزه تا نباشد اشق اوتان گوش کش از یکی کوزه دهد زهر و اصل هر یکی را دست حق از و جل کوزمی بینی و لیکن آن شراب روی ننماید به چشم ناسواب قاصرات و طرف باشد زوق جان جز به خسم خود به نشان قاصرات و طرف آمد آن مدام بین هجاب ظرف ها همچون خیام هست دریا خیمه دروی حیات بت را لیکن کلاغان را ممات زهر باشد مار را هم قوت و برگ غیر او را زهر او دردست و مرگ صورت هر نعمتی و مهنتی هست این را دوزخ، آن را جنته. پس همه اجسام و اشیا تو بسرون، و اندرو قوت است و سم لا تو بسرون. هست هر جسم چوکاسا و کوزه، ای. اندرو هم قوت و هم دل کاسه پیدا اندرو پنهان رغد طایمش داند کزان چه می خورد صورت یوسف چجام بود خوب زان پدر می خورد صد بادی تروب باز اخوان را از آن زهراب بود کاندریشان خشم و کینه میفزود باز از وی مرز و شکر می کشید از عشق افیون دگر غیر آنچه بود مریعقوب را بود از یوسف غذا آن خوب را گونه گونه شربت و کوزه یکی تا نماند در می غیبت شکه باده از غیب است و کوزه زین جهان کوزه پیدا باده در وی بس نهان بس نهان از دیده نامحرمان لیک بر محرم و آیان یا الهی سكرت ابصارنا فهفو عننا اسقلت عوارنا يا خفيا قد ملأت الخوف قد علات فوق نور المشرقين انت سر كاشف اسرارنا انت فجر مفجرن انهارنا یا خفیه ذات محسوس العطا انت کلمائه و كالرها رها، انت کریه و نهنو کلغبار تختفی ریح و جهار تو بهاری ما چو باغ سبز و خوش او نهان و آشکارا بخششش تو چو ما مثال دست و پا قبض و بست دست از جان شد روا تو چو عقلی ما مثال این زبان این زبان از عقل دارد این بیان. تو مثال شادی و ما خنده ایم. که نتیجه شادی فرخنده ایم. جنبش ما هر دم خود اشهد است که گواه زلجلال سرمد است. گردش سنگ آسیا در استراب اشهد آمد بر وجود جوی آب ای برون از وهم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من بنده نشکی بد ز تصویر خوشت هر دمت گوید که جانم مفرشت همچو آن چوپان که می گفت ای خدا پیش چوپان و محب خود بیا تا شپش جویم من از پیراهند چارو دوزم ببوسم دامند کس نبودش در هوا و عشق جفت لیک قاصر بود، از به گفت، عشق او خرگاه برگردون زده جان سگ خرگاه آن چوپان شده چون که بحر عشق یزدان جوش زد بر دل او زد تو را برگوش زد حکایت جوهی که چادر پوشید و در وعز میان زنان نشست و حرکتی کرد. زنی او را بشناخت که مرد است و نعره زد. واعزی بود بس گزیده در بیان. زیر منبر جمع مردان و زنان. رفت جوهی چادر و روبند ساخت در میان آن زنان شد ناشناخت سایل پرسید و ازرا براز موی آنه هست نقصان نماز گفت واعظ چون شود آنه دراز پس کراحت باشد از وی در نماز یا به آهک یا سطره بسترش، تا نمازت کامل آید، خوب و خوش. گفت سایل آن درازی تا چه حد شرط باشد، تا نمازم کم بود. گفت چون قدر جوی گردد به طول، پس سطردن فرض باشد، ای سعول. گفت جوهی زود، ای خواهر ببین آنه من گشته باشد این چونین بهر خوشنودی حق پیشار دست کان به مقدار کراهت آمده است. دست زن در کرد در شلوار مرد. کیر او بر دست زن آسیب کرد. نعره زد سخت اندر حال زن. گفت از بردلش زد گفت من گفت نه بردل نزد بر دست زد وای اگر بردل زدی این پر خرد بر دل آن ساهران زد اندکی شد عصاو و دست ایشان را یکی گر اصا از پیر بیش رنجد کان گروه از دست و پا نعرۀ لازیر برگردون رسید هین ببر که جان ز جان کندن رهید ما بدانستیم ما این تن نییم از برای تن به یزدان میزییم ای خونوک آن را که ذات خود شناخت اندر امن سرمدی قصر بساخت کودک گرید پی جوز و مویز پیش باشد باشدان بس سر چیز پیش دل جوز و مویز آمد جسد دفل کی در دانش مردان رسد هر که محجوب است او خود کودک است مرد آن باشد که بیرون از شک است گر بریش و خایه مردستی کسه، هر بزی را ریش و مو باشد بسی پیشوای بد بود آن بز شتاب میبرد برد اصحاب را پیش قصاب ریش شانه کرده که من سابقم سابقی لیکن بسوی مرگ و غم هین روش بگذین و ترک ریش کن، ترک این ما و منو تشویش کن تا شوی چون بوی گل با آشقان پیشوا و رهنمای گلستان کیست بوی گل، دم اقل و خرد خوشقلاووز ره ملک ابد. فرمودن شاه به بار باردگر که شرح چارق و پوستین آشکارا بگو تا خاجتاشانت از آن اشارت پند گیرن که اد و نصیحت سر چارق را بیان کن ای ایاز، پیش چارق چیستد چندین نیاز تانیوشد سنقر و بکیارقت سر سر پوستین و چارقت ای از تو غلامی نور یافت نورت از پستی سوی گردون شتافت حسرت آزادگان شد بندگی بندگی را چون تو دادی زندگی مؤمنان باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد حکایت کافره که گفتندش در عهد بایزید که مسلمان شو و جواب گفتن او ایشان را. بود گبر در زمان بایزید گفت او را یک مسلمان سعید که چه باشد گر تو اسلام آوری؟ تا بیابی صد نجات و سروری گفت این ایمان اگر هست ای مرید آن دارد شیخ عالم بایزید من ندارم طاقت آن تاب آن کان فزون آمد ز کوشش های جان گرچه در ایمان و دین ناموقنم، لیک در ایمان او بس مؤمنم، دارم ایمان کانز جمله برتر است، بس لطیف و بافروغ و بافر است، مؤمن ایمان اویم در نهان، گرچه محرم هست محکم بر دهان. باز ایمان خود گر ایمان شماست، نه بدان میل استم و نه مشتهاست آن صد ست میلش سوی ایمان بود، چون شما را دید، آن فاتر شود زان که نام بیند و معنیش نی چون بیابان را مفازه گفتنی، ای. اشق او زاورد ایمان بفسرد چون به ایمان شما او بنگرده. حکایت آن معزن زشت که در کافرستان بانگ نماز داد، و مرد کافر او را هدیه داد. یک معزن داشت بس آواز بد. در میان کافرستان بانگ زد. چند گفتندش مگو بانگ نماز که شود جنگ و ها دراز. او ستیزه کرد و پس به احتراز گفت در کافرستان بانگ نماز خلق خایف شد ز فتنه آمه خود بیامد آمد کافر با جامه شم و حلوا با چنان جامه لطیف هدیه آورد و بی آمد چون علیف پرس پرسان که این معزن کو کجاست؟ که سلا و بانگ او راحت فضاست. هین چراحت بود زان آواز زشت؟ گفت که آوازش فتاد کنشت دختری دارم لطیف و بس سنی، می بود او را مؤمنی. هیچ این سودا نمی رفت از سرش، پندها میداد چندین کافرش، در دل او مهر ایمان رسته بود همچو مجمر بود این غم من چو اود در عذاب و درد و اشکنجه بودم که بجن بد سلسله او دم بدم هیچ چاره ندانستم در آن تا فرو خواند این معظن آن از گفت دختر چیست این مکروه بانگ که بگوشم آمد این دو چار دانگ من همه عمر این چونین آواز زشت هیچ نشنیدم در این دیرو کنشت. نشت خواهرش گفتش که این بانگ آن هست اعلام و شعار مؤمنان باورش نامد بپرسید از دگر آن دگر هم گفت آره ای پدر چون یقین گشتش رخ او زرد شد از مسلمانی دل او سرد شد باز رستم من ز تشویش و عذاب دوش خوش خفتم در آن خوف خواب راحتم این بود از آواز او هدیه آوردم به شکر، آن مرد کو چون بدیدش گفت این هدیه پذیر که مرا گشتی مجیر و دستگیر آنچه کردی با من از احسان و بر بنده تو گشتم من مستمر گر به مال و ملک و ثروت فردمی من دهانت را پر از زر کردمی ای. هست ایمان شما زرق و مجاز راه زن همچون که آن بانگ نماز لیک از ایمان و صدق بایزید چند حسرت در دل و جانم رسید همچون آن زن کو جماع خر بدید گفت آوه چیست این فحل فرید گر جماع این است بردند این خران بر کس ما می ریندین شوهران داد جمله داد ایمان با یزید آفرین ها بر چنین شعر فرید قطره زیمانش در بهر رود بر اندر قطرهش اش غرقه شود همچو ذاتش ضرهی در بیشه ها اندر آن زره شود بیشه فنا، چون خیال در دل شهر یا سپاه کرد اندر جنگ خسمان را تباه، یک ستاره در محمد رخ نمود، تا فنا شد گوهر گبر و جهود، آنکه ایمان یافت رفتن در امان، کافرهای باقیان شد دوگمان، کفر صرف اولین باری نماند، یا مسلمانی و یا بیمی نشاند. این به حیله آب و روغن کردن است. این مسئله ها کفو ذره نور نیست. ذره نبود جز حقیر منجسم، ذره نبود شارق لاینقسم، گفتن ذره مرا دیدن خفی محرم دریا نی این دم کافی آفتاب نیر ایمان شیخ گر نماید رخ ز شرق جان شیخ جمله پستی گنج گیرد تا سری جمله بالا خالد گیرد اخزری او یکی جان دارد از نور منیر او یکی تن دارد از خاک حقیر ای عجب این است او یا آن بگو که بماندم اندر این مشکل امو. گروی این است ای برادر چیست آن پر شده از نور او هفت آسمان ورویان است این بدن ای دوست چیست ای عجب، زیندو کدامین است و کیست؟